سر نماز شبیه حرم مومرز به کفشتو در بیار سر نماز باشی. و با کفش میشه نماز بخونی. کفش میشه نماز بخونی. شبیه حرم مومرز دم در کفش کفشتو میگیرن کفشتو بده کفش تو میگیره. کفشم کی می دونی یعنی چی؟ تو قرآن کفش یعنی چی؟ فخل نالایک. این نکبِ الواضِ تو با کفشتو در بیار. اومدی به وادیه مقدس تووا الان اینجا جایی استادی که من با تو صحبت کردم این کفش میگن فکر دنیا و اهل و رو از ذهنت خارج کن تو روایت هست کفشتون یعنی فکر دنیا رو میدی فکر دنیا رو بده برو حرم بعد میگی السلام علیک یا علی ابن موسر رزا آقا سلام آقا میفرمد که چی میخواستی برای گرفتارید اومدی؟ میگی نه کفش رو در آقا برتم در آقا تو خوبی؟ چقدر تو نازنین میگی؟ وزیرته امین الله میکنی یک کلمه دعا برا دنیا نمیکنه میگه چقدر عالی همه چیز سر نماز شبیه حرم امرزاست میگه کفشات در بیار سر نماز بایست با کفش میشه نماز بخونی و حالا سر نماز وقتی کفشتو در بری به دست خدا ای خدا این کفشتو بده من باید صدق کفشتو در بری به دست ها بعد از نماز کفشتو میده واکسش زده تو کفشتو در بیار تو کفشتو در بیار خیلی ها میگن آقا گرفتاریم به هم پیچیدیم داغونیم بالا پایین نه هرچی چیکار کنیم میگم سر سجاده نماز به فکری گرفتاریت نباش. اون راستی که میگی الله اکبر بگو من بدهکار نیستم من بیمار نیستم من قرضدار نیستم من هیجان زده برای فلان زیبایی ها نیستم من دو روز بشور و سین باقی نمونده من داماد نیستم من عروس نیستم من هیچ, هیچ چی نیستم الان اب فکر تو از فکر دنیا خالی کن سر نماز بنزه نماز ببین گشایش ایجاد نمیشه انقدرها گفتم رفتن تجربه کردن گفتن گرفتاریمون حل شد سر نماز شبیه حرم علیزه است کفشاتو در در بیار